با قسمت سوم از مجموعه پادکست های مکالمه انگلیسی برای همه در خدمت شما زبان آموزان و سروران عزیز هستیم. در درس های گذشته نحوه ساختن جملات رو با هم تمرین کردیم. در این درس که درس سوم هست یاد میگیریم که چطوری خودمون رو معرفی کنیم یا اطلاعات دیگران رو از اونها بپرسیم این اطلاعات فردی شامل این موارد هستند نام و نام خانوادگی سن ملیت شغل ایمیل سایت تلفن، آدرس و وضعیت تعهل ما برای پرسیدن اطلاعات فردی افراد میتونیم از چند تا الگوی ثابت استفاده بکنیم که ساده ترین و پرکاربردترین ترین الگو این الگو هست که خدمت شما عرض می what, یعنی چه چیز is هست your و بعدش هم کلمه مرنظر رو قرار می دی. what is your, چه چیز هست مثلا اسم شما یا مثلا سن شما یا مثلا شغل شما. What is your name؟ اسم شما چیست؟ منظور از اسم میتونه اسم کوچک یا نام خانوادگی باشه یا اسم کامل باشه. What is your first name؟ اسم کوچیکتون چیه؟ First یا اولین، last یا آخرین که همون نام خانوادگی هست. What is your first name? What is your last name? زمانی که ما از دیگران یک پرسشی رو می‌پرسیم، اگر اون پرسش توضیحی نباشه، جواب اون سوال یک کلمه است. اما اگر بگن چرا؟ و به چه علت؟ اون وقتی باید توضیح بدیم براش. What is your first name? اسم کوچیکی شما چیه؟ یا میتونیم بگیم What is your last name? نام و خانمدگی شما چیه اگر بگیم what is your full name که همون فول که اشتباه تلفظ میشه full یعنی کامل what is your full name یعنی اسم کامل شما چیه باید نام و نام و خانمدگی رو با هم توضیح بده. با عنوان مثال what is your first name چون یک کلمه جواب سال هست مثلا میگیم اشکان what is your first name اشکان What is your last name? ابراهیمی اما اگر بگم What is your first? ببخشید What is your full name? و باید بگم عشقان ابراهیمی کامل تر کردن این جمله بستگی به شما داره یعنی شما میتونید هم یک کلمه جواب بدید همین که کامل تر بگید My name is عشقان ابراهیمی My name is Reza احمدی. My name is Yalda Mahavandi. سوال برای در مورد سن هست که از کلمه age استفاده می‌کنیم. What is your age? سن شما چیست؟ جوابش فقط یک عدده. نمیخواد توضیح بدید I have to any مثلا 4 years I am to 4 years اینا نیاز نده یک کلمه وقتی از شما میگه what is your age یک کلم جواب میدید 24 23 مثلا 23 24 30 مثلا 30 سال اما زمانی که خودتون بخواید در مورد خودتون صحبت کنید بود کامل حرف بزنید نمیتونید برید مثلا توی یه بعد به شما خودتون رو معرفی کنید همجوری کنید، همه رو پویسر هم علکی بیکید مثلا رضا احمدی، مثلا 23، ایران، ستیودنت، امشین معنی است. I am Riza احمدی. I am 23 years old. I from Iran. I university student. اینجوری باید خود رو معرفی کنیم. اما وقتی از ما می پرسند، وقت بسته به نوع سوال، ما می توانیم یک کلمه توضیح بدیم یا کامل ترش میکنیم. کلمه بعدی، نشنالیتی، همین جوری که گوش میدید تکرار هم بکنید که زبان شما با این کلمات آشنا بشه. Nationality. nationality بخش بخش می‌کنیم ن ش ن ل ت what is your nationality یعنی ملیتتون چیه حالا شما میتونید بگید iranian یا میتونید از اسم به جای صفت استفاده کنه یه وقت شما میگید من اهل ایرانم یه وقت میگید من ایرانی هستم یا من ایرانی تبار هستم من اهل امریکا هستم من امریکایی هستم اگر میگید من اهل ایران هستم اینجا از اسم استفاده میکنم I am from Iran I from Iran اما اگه خواستید از صفت استفاده کنید باید بگید I'm Iranian یعنی من ایرانی هستم پس ایران و ایرانی عراق اراک، ইরাکی عراق اراک و عراقی ترکیه ترکیه ترکیش ترکیه تبار یو یعنی امریکا امرییکن امریکایی یو انگلستان انگلیش، انگلیسی یا بریتانیایی در مورد کار یا شغل اگر بخواییم سال کنیم دو تا کلمه پر استفاده داریم اولی جاب که همه بلدیم و در سیستم بریتانیایی و لحجه بریتش بیشتر استفاده میشه اما خب الان امریکایی هم میتونم استفاده استفاده میکنم اما کلمه این که در مکالمه و محاوره بیشتر شنیده میشه کلمه occupation هست. A یا occupation به معنی شغل. What is your occupation؟ Doctor. دکتر دکتر است. Dentist دانش University student دانشوی دانشگام. Secretary secretary What your email? Email on چیه؟ What is چیه؟ What your website؟ on چیه؟ در هنگام بیان کردن ایمیل چند تا کلمه از کمک نه بدادم که علامت زیر خط هست یا underline علامت نقطه هست که dot میگیم و اون at sign که بعدش هم سایت مورد نظر رو میاد. مثلا ما یک ایمیل در سایت گوگل داریم که بهش گیمیل میگیم مون مثلا میگیم احمدی underline two o one at sign gmail .com. یا مثلا ایمیلی در سایت یاهو داریم احمدی مثلا underline 23 at sign yahoo.com حالا یا ya یا gmail.com یا hotmail.com بس این که در چه سایتی ما ایمیل داشته باشیم در قسمت بعدی ما ممکنه شما تلفن ها رو سوال بکنیم telephone نمبر شما تلفن حالا یا تلفنه خونه هست که میگیم home telephone نمبر. what is your home telephone number what is your office یعنی yani دفترتون Office telephone number یا yeah, What is your cell phone number Cell phone برای موبایل استفاده میشه دقت داشته باشید که کلمه موبایل به معنای سیار هست و در انگلستان استفاده میشه برای تلفون های ها موبایل فون هم ام امریکایی میگن cell phone number شمار تلفون همراه برای بیان کردن شمار هم همه معمولاً دو رقم دو رقم اما به صورت جدا بیان میکنیم هر جه که عدد سفر ببینیم ما این تدریسی که داریم در لحشه امریکایی هست به همین خاطر اون رو براتون بیان میکنیم عدد صفر چون شبیه حرف انگلیسی O هست O تلفظ میکنیم در حالی که در انگلستان zero میگن اگر عددی هم تکرار بشه انگلیسی ها از کلمه double استفاده میکنن اما امریکا استفاده نمیکنه و خود کلمات و حروف رو تکرار میکنه مثلا در امریکا اگه بخوام بگم مثلا دو 0 مثلا 66 میگن او او بعد یه مکشی میکنن که طرف مقابل بتونه یادداشت کنی یا به خاطر بسپاره بعدش میگن 6 6 در حالی که در انگلستان یا UK میگن دابل 0 دابل 6 خب کلمه بعدی که استفاده میشه کلمه ادرس هست what is your address ادرس شما جی وزیت تعهل marital status marital status که امریکایش قلیستر به این صورت میشه marital status marital status خب اگر ما قرار باشه تمام این سوالاتو هی بگیم what is your name what is your nationality what is your occupation what is your cellphone number طرف مقابل خسته کننده براش به می خاطر اینکه سوالاتمون رو از اول تکرار و این باخه در میاریم و سوالات جایگزین قرار میدیم. مثلا اگه دوتای اول رو با what is your profession دوتای بعدی رو با can i have your میپرسیم. آیا می داشته باشم؟ can i can i have your name Can I have your first name? Excuse me, ma'am. Can I have your name? مزد بخم خانم. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ یا میتونم اسمتون رو داشته باشم؟ یا میتونم بگید؟ Can I have your occupation? Can I have your nationality? دو تا پرسیدیم. دو تا بعدی رو جور دیگه میپرسیم. استلاح سبوم از کلمه what, about استفاده می کنم. برای تلفظ W دقت کنید که لبه باید گرد بشه. W یک حرفی است که در زبان عربی و زبان کوردی خیلی قشنتر تلفظ میشه. لفظ کاملاً گرد میشه What? What about your name؟ اسمتون چطور؟ مثلا میگیم What is your name؟ اسم شما میگه. What is your job؟ شغل میگه. بعد میگیم Can I have your email? ایمیل ایمیلشو میگه. Can I have your address؟ آدرسشون بگیم. بعدش میگیم What about your marital status? وضعیت تعالیتون چطور؟ این شد ستا. یا میتونیم بگیم AND YOU'RE و بعدش اون کلمه رو بیاریم. زمانی که AND رو میخواهم تلفاز کنیم دی رو تلفظ نکنید و تا حرف N تلفظ کنید. AND YOUR AND YOUR AND YOUR PHONE NUMBER and your address, and your nationality, and as in is. One example I would like to ask you, I would like to ask you, that you would like to ask yourself, and without any question, you would like to ask My name is Yelda Mahvendi. I am 23 years old. I'm from Iran, city of Tehran. من اهل ایران هستم شهر تهران I'm a university student من دانشجوی دانشگاه هستم I love English and play the sports من عاشق انگلیسی و ورزش کردن هستم خب حالا اگر بخوایین لیستی از اشیا یا آیتم ها رو معرفی بکنید از کلمه such as such as یعنی از قبیل استفاده بکنید بعضیان for example میگن غلط نیست اما باید معرف بکل که بگیم ساچ است. من انگلیسی و بازی کردن هستم. از قبیله یا ورزشهایی از قبیله. The sports uh, such as اسکی کردن، swimming، swimming، شنا and soccer و فوتبال. امیدوارم که درس سه رو به بخواهید بتونید فرا بگیرید و ان بتونیم در درس چهارم مطالب جدی‌تر رو خدمتتون عرض بکنیم